سلام و صد سلام به شنونده های عزیز داستان این قسمت فرهاد و فرخ یکی بود یکی نبود یک پیرمرد مرد خارکشی بود که بدبخت و بیچاره بود و هیچ دارایی و ثروتی نداشت هر روز می کوه خار جمع می و به شهر می آورد آنها رو میفروخت به صد ریال و صرف خود میکرد. همینجور همین جور تا مدتها کار او همین بود روزی دعا و التماس به درگاه خداوند میکرد که خدایا یه روزی دیگهای به من بده که این کار برای من فایده نداره از غذا دعای این پیرمرد قبول میشه یه روز که پیرمرد به صحرا رفته بود که خار بیاره وقتی یک پشت خار جمع میکنه و اون رو کول کرد که بیاد ناگهان مرغی از روی سنگی پرواز میکنه و روی پشتهٔ اون میشینه و یه تخم میگذاره پیرمرد توخ رو برمیداره و به شهر میاد. به هر جای میبره که بفروشه چون که گران بود کسی نمیخریده. یه مغازداری بود به نام شمعون کلیمی. شمعون خریدار تخم مرغ شد و اون رو خرید به مبلغ هزار ریال. و پیرمرد رو راهنمایی کرد که این مرغ رو بابا سلیمان میگویند و سه تخم بیشتر برای تو نمیگذاره. تخم سومو که گذاشت یواش پای اونو بگیر اگه خواست تو رو بلند کنه بگویا یا حضرت سلیمان مرغ مال من باشه مرغ آسوده میشه اون مرغو بیار تا به قیمت گرانی از تو بخرم پیرمرد فردا به کوه میره و همونجور تخم رو به دست میاره و به بازار میره و به شمعون کلیمی داد به همون مبلغ پیش که گفتم روز سوم به همون کوه میره مرغ میاد تخم رو رو پشته خارو میگذاره خواست که بلنشه که پیرمرد یواش پای اونو میگیره میخواد پیرمردو با خودش ببره که پیرمرد میگه یا حضرت سلیمان آسوده باش مرغ مال من باشه مرغ آسوده میشه پیرمرد اون مرغ و تخم مرغ رو به بازار میبره و به شم اون میده شم اون تخم رو میخره اما میگه مرغ رو ببر برای خودت که بخوری اما سر و جگر اون رو برای من بگذار آدرس خونتم به من بده که بیام سر جیگر اونو بخورم پیر مرد آدرس خونه رو داد و رفت به خونه و قضیه رو برای خانوادش میگه که به این دعا و التماس که کردم دعای من مستجاب شد و این روزی به من رسیده مرغ رو کشتند و خوردن اما جیگر و سر مرغ رو برای شام اون گذاشتند پیرمرد مرد و پسر داشت که به مکتب میرفتن یک پسرش به نام فرهاد و دیگری به نام فرخ مادر فرهاد و فرخ رفته بود بیرون ناگهان هم از مکتب اومدن خونه یک دیگی رو دیدن که وارونه گذاشته شده دیگ بلند کردن دیدن زیر دیگ سر و جیگر مرغی هست فرهاد کله به دستش اومد و فرخ جیگر کله و جیگر رو رو آتیش گذاشتند و پختند و خوردند بعد از خوردن کله و جگر مادر بچه ها به خونه اومد. دید بویی میاد. گفت مبادا کله و جگر رو خورده باشی؟ بچه ها مگه این کله و جگر برای ما نزاشته بودی که بخوریم؟ آه از نهاد مادر بلند شد که این امانت مالش همون کلیمیه. با اجله بیرون میاد و به پیرمرد میگه چه نشستی که بچه ها کله و جگر رو خوردن؟ پیرمرد گفت خوردن که خوردن مگه چی شده؟ زن گفت میخوای چی بشه؟ بچه ها امانت رو خوردن. حالا اگه شمون بیاد جواب اون چی میدی؟ پیرمرد گفت اگه اومد میگم بچه ها کله و جگر مرغ رو خوردن. زن در جواب گفت شممون بچه ها رو میکشه. پیرمرد گفت اگه خواست بچه ها رو بکشه میگم که حق نداری بچه ها رو بکشی. اگه قبول نکرد میگم سه تا تخم مرغ منو بیار و پولتو پس بگیر. پیرمرد زنش در همین حرف که بودن یهو بچهها از پشت دیوار خونه گوش میکردن شک شد بچهها از ترس به خونه نیمدند در پشت خونه روشنایی بود ایستادن که ببینن چی میشه ناگهان شمعون از در خونه وارد میشه میبینه پیرمرد و زنش در فکر هستن شمعون گفت چی شده که هر تون تو فکرین مگه کله چیکار کردین پیرمرد و زنش گفتن بله کله و جیگر رو بچه ها خوردند. شمون گفت بچه ها رو بیاری تا انا رو بکشم و کله و جگر از شکمشون در بیارم. بچه ها این حرفها رو شنیدند و فرار کردند. تا چشم کار میکرد رفتند. فردای اون شب به یه جایی رسیدند که دوتا راه داشت. یک راه اون نوشته بود برو بر نگرد. یک راه دیگه نوشته شده بود برو برگرد. و در بین اونها نوشته شده بود هر کس به اینجا اومد اگه دو نفر باشه باید یکی راه بروبرگرد و یکی هم از راه بر بروبرنگرد بره فرهاد گفت برادر عزیز من از راه بر بروبرنگرد میرم و تو با آن راه برو فرهاد قبول نکرد فرهاد گفت محال است که من از این راه نرم خلاصه هر چی فرهاد اصرار کرد فایده نداشت خلاصه فرهاد گفت میرم اما بشنوید فرخ هر شب که میخوابید و صبح بلند میشد صد پول زیر سرش بود دست خودشو تو بغلش کرد و صد پول پولی که دیشب بود و زیر سرش دیده بود و به اون داد و گفت برادر این مقدار پول رو همراه خودت ببر فرهاد در جواب گفت این پول رو به من میدی خودت چی کار میخوای بکنی فرخ گفت به من چیکار داری منم خدایی دارم مقداری پولم همرام هم هست خدافسی کردن و رفتم. حالا چند کلمه از فرهاد بشنو. فرهاد رفت و رفت و رفت تا رسید به یه شهر بسیار بزرگ. دید در میدان شهر جمعیت زیادی ایستادن و یک باز هم در دست دارند قرار بود که این باز رها کند، روی سر هر کس که نشست اون پادشاه بشه. در همون حال که فرهاد به اونها نزدیک میشد بازو باز و آزاد کردن. باز هم ده دور دور دور سر اونها پرواز کرد و روی سر فرهاد نشست همگی اونها داد و فریاد کردند که این باز دیوانه شده میره روی سر یه بچه غریبه میشینه بازو گرفتن و نهیب زدن که چرا این پسر غریب رو قبول کردی باز تو قفس کردن و دوباره آزاد کردن دوباره روی سر فرهاد نشست همگی گفتند حتما این پسر پادشاهزاده است اونو باید قبول کنیم فرهاد رو پادشاهی خودشون کردن به همون بردن شس شوش کردن و لباس پادشاهی برای آوردن پوشید و بر تخت سلطنت نشست. فرهاد شهر رو منظم کرد. یک سال گذشت. شاه گفت فردا می به شکار برم، اسباب شکار رو آماده کنید. وزیر وزرا اسب رو آماده کردند. فردای اون روز پادشاه با جمعیت زیادی برای شکار به صحرا رفت. رفتند و رفتند تا رسیدن به دشت بسیار بزرگی که چمنزار خیلی زیبایی داشت. نگاه کردند دیدن که یک آهوی خیلی قشنگی داخل چمنزار داره میچره. پادشاه حکم کرد. دور این آهو رو بگیرید. اثر هر کس که رد شد سر اون کس رو میزنم. ناگهان آهو جست و از سر پادشاه رفت. پادشاه گفت شما برگردین به بارگاه تا من دنبال این آهو برم. همه گی برگشتم و پادشاه تک و تنها دنبال آهو رفت تا رسید به یک قصر زیبا. آهو به شکل یک دختر زیبا در اومد. دیگه طاقت پادشاه تموم شد. جلو رفت و خواست دختر رو بگیره که همراه خودش ببره. اما دختر یه دعای خوند و اونو به شکل مجسمه سنگی کرد. دست از فرهاد بکش حالا چند کلمه حالا از فرخ بشنو که با برادر خود ما هم بودم و بر سر همون دو رسیدم که نوشته بود برو بر نگرد و برو برگرد که فرخ از همون راه برو برگرد رفته بود او رفت تا به یک باغ رسید پیش خود گفت بروم بروم در این باق چون خسته هستم کمی استراحت کنم میره داخل باغ میشه و قدری از میوه این باغ میخوره. خوابش میبره. سر خودش که به زمین میتزاره به خواب عمیق میره. ناگهان صاحب باغ میاد. میبینه که یک جوانی زیر درخت خوابیده. چیزی نمیگه تا اون جوان از خواب بیدار بشه. صاحب باغ از اون پرسید از کجا آمدی؟ تمام حال و احوال خودش رو تعریف میکنه. صاحب باغ گفت باغبون بون میشی؟ فراغ گفت آره که میشم فرخ قبول کرد که باغ بشه باغ شد و هر روز باغ رو آبیاری میکرد همینجور که آبیاری میکرد دید که روی برگ درخت ها اسم پادشاه ها نوشته شده همینجور که میخوند اسم برادرش رو دید که شاه شده مدت یک سال گذشت. یک روز میره ببینه اسم برادرش چی شده نگاه میکنه میبینه که برگی که اسم برادرش نروش نوشته شده بوده زرد و ضعیف شده. آه از نهادش بلند میشه که چی شده؟ گفت که دیگه باغونی برای من فایده نداره. طاقت فرخ تموم میشه. باغ رو به صاحب باغ میده و یک راست راه بیابون رو میگیره. میره و میره تا ده شبان روز راه میره تا میرسه به همون شهری که برادر شاه بود دید همه مردم سیاه بوش هستن خلاص فراخ تا مدت یک ماه در این شهر زندگی میکنه یه روز دید که جارچی در پشت بامها جار میزنه که فردا میخوایم شاه رو انتخاب کنیم هر کس که قابل است بیاد تو میدون شهر ما باز رو آزاد میکنیم روی سر هر هرکس که بشینه اون شاه میشه همه مردم در میدان شهر جمع شدند فروخ هم به میدان اومد همگی جمع و آراسته بودند و به دایره ایستاده بودند باز رو از قفس آزاد میکنن. باز همین که از قفس بیرون اومد یک مرتبه روی سر فروخ میشینه بعضی از مردم داد و فریاد کردند که این باز نمیتونه شاه تعین کنه بعضی از مردمهم گفتند خوبه مگه ما هر سال یه شاه عوض نمیکنیم بگذارید هر چی پادشاه انتخاب می‌کنیم، حالا خارج از این مملکت باشه همه قبول کردن و فروخ رو پادشاه خود کردن اونا همو بردن شستنش لباس پادشاهی به او دادن فروخ به تخت شاهنشاهی میشینه و تا مدت یک سال بعد از یک سال هوای شکار به سرش افتاد حکم کرد که فردا میخوام به شکارگاه برم. همه مردم برای فرخشاه افسوس می خورن که مبادا اینم به بر نگرده خلاصه اسباب شکار رو آماده کردند و به شکار رفتند و باز هم به همون چمنزار رسیدند و همون آهوی قدیمی رو دیدند که در چمنزار میچره. پادشاه حکم کرد که دور این آهو رو بگیرید و اگر از بالای سر هر پرید سر او رو بر آهو به همون مسئله پیش که گفتم از سر پادشاه پرید. پادشاه همه رو مرخص میکنه و خودش دنبال آهو میره تا به همون قصر میرسه. میبینه که آهو به شکل یک دختر خیلی زیبایی در اومده. اما پادشاه محل نمیذاره. بی اعتنایی میکنه. پادشاه دید که ای در چمنزار هست. میره تا به اون چشمه میرسه. و چند کفی هم آب میخوره و خستگی در میکنه و نه خواب و نه در حال دراز کشیدن و چرت زدن میشه چند کلمه از دختر بشنبیم که او رو بیبی میگفتن بیبی به بی کنیز میگه برو سر چشمه یه ظرف بیار تا قهوه و قلیونی درست کنیم کنیز ظرف و بر میدار و سر چشمه میره میبینه جوانی سر چشمه خوابیده که خدا از دل دوسی خودشون آفریده زود بر میگرده و آب همراه خودش نمیبره. به بیبی میگه چه نشسته ای؟ جوانی رو چشمه خوابیده که خدا از دل دوسی خودش آفریده بیبی بی گفت خودم اون جوان رو میشناسم اون فرخشاهه. بعد سر کنیز داد میزنه که برو آب بیا چه کاری به این کارا داری کنیز بر می گردید سر چشمه با میاد و ظرف خودش رو پر از آب میکنه. برمیگرده وارد قصر میشه. قهوه و قلیون آماده میکنه. بیبی رو صدا میزنه که قهوه و قلیون آماده است. بیبی گفت برو پادشاه رو بیار. کنیز به جانب پادشاه میره. میگه ای پادشاه بیبی دستور فرموده که این منظر به شما تعلق داره. خواهش میکنم به منظر تشریف بیاری. پادشاه در جواب گفت ای کنیز برو به بیبی بگو بی پادشاه میفرماید که همینجا میمانم و شما را زحمت نمیدهم در همینجا خستگی خود را بیرون میکنم راهی دارم از راهم می میروم راضی به زحمت شما نیستم کنیز برگشت به قصر و به بی بیبی گفت که نمیاد و همون حرفهای که شاه زده بود گفت بیبی بی جواب داد خودم میرم او رو میارم او پادشاهه به همراه تو نمیاد خودش سراندازی به سرش میندازه و پیش پادشاه میره. هم دو سنای پادشاهی رو به جا میاره و با اصرار زیاد پادشاه رو به خونه خودش میبره و به اون خیلی احترام میکنه. چای و قهوه و قلیان صرف میکنن و بعد بیبی بی به پادشاه میگه من شاه های زیادی رو به همین ترتیب به اینجا آوردم. بی بودند بودن که مرا ببرند من هم دعایی میخوندم اونها رو به صورت سنگ در می آوردم اما تو عاقلانه رفتار کردی حالا من با تو سه شرط دارم اگه شرط منو به جا آوردی من با تو ازدواج میکنم و اگر شرط منو به جا نیاوردی، تو را مثل این شاه ها به صورت سنگ میکنم شاه میگه سه شرط شما چیست شاید بتوانم چاره کنم بی بی گفت شرط من اینه که امشب سه مرتبه مرا به زبون بیاری. اگر مرا به زبون بیاری همه ی مجسم ها رو با اجازه خودت به صورت آدم در میاره. امشب میام پیش شما و با شما ازدواج میکنم. شاه قبول میکنه. بی, بی دست شاه رو میگیره و داخل مجسم ها میاره. فروخ شاه نگاه میکنه میبینه برادرش هم داخل مجسم هاست. پادشاه احوالات خودش رو برای بیبی بی تعریف میکنه تا به اینجا که به برادرش میرسه بعد هر دو به قصر برمیگردن وارد قصر میشن شب میشه شام رو میخورند بعد بیبی بی رفت در بستر خوابید اما خوابش نیومد پادشا و کنیز نشسته پادشاه گفت ای کنیز شب بلند است و غلندر بیکار بیا یک قیلیان به دست من بده تا یک قصه برایت بگویم کنیز میشه یه قیلیان به دست پادشاه میده و پادشاه هم همینجور قصه خودش رو شروع میکنه ای کنیز بگم که سه نفر با هم همیشه مسافرت میکردن یک وقتی باز هم به مسافرت رفتن چندتا خورجین زر داشتن به یک بیابانی میرسن و شب میشه اونجا میمونن شام میخورن هر سه نفرشون فکر کردن که اینجا دوز زیاده باید نوبت به نوبت کشیک بدیم اما این سه نفر هر یکی یه شغلی داشت یکی نجار بود یکی خیات بود یکی هم ملا بود نجار گفت اول من کشیک میدم اون دو نفر خوابیدن و نجار کشیک داد دید خوابش میاد پیش خودش گفت باید به شغل نجاری مشغول بشم تا خوابم نگیره تیشه و عرب و چکش خودشو میداره و میره تو جنگر یه کلمه چوب میاره و مشغول نجاری میشه و یه مجسمه چوبی درست میکنه که نوبتش تموم میشه. صدا میزنه ای خیاط بلند شو که نوبت تو شده. خیاط بلند میشه و نجار خوابید. خیاط یه سیاهی میبینه که از دور ایستاده و صدا نمیکنه. خیاط صدا میزنه ای سیاهی کی هستی؟ اینجا برای چی اومدی؟ دید سیاهی چیزی نمیگه. پیش اون رفت. دید که یه مجسمه چوبیه. فهمید که این مجسمه رو نجار درست کرده. پیش خودش گفت من هم باید لباس مجسمه رو درست کنم. خیاد مشغول لباس دختن میشه و لباس خوبی تنه اون مجسمه میکنه که نوبتش تموم میشه. صدا میزنه ای مولا بیدار شد که نوبت توه. خیاطم هم خوابید و ملا بیدار شد و مثل همون خیاط مجسمه رو میبینه و با اون حرف میزنه. اما جواب نمیشنوه پیش میره میبینه که یه مجسمه چوبیه و یه لباس زنونه تنش داره. پیش خودش فکر میکنه این مجسمه رو نجار درست کرده. خیاطم هم رو دوخته که من جان بهش بدم. مولا و چکمه خودشو پر از خاک کرد و دعا و التماس به درگاه خدا کرد که این مجسمه رو تو به جان بیار که من پیش این دو نفر خجالت نکشم خدا دعای اونو قبول میکنه مجسمه به جان میاد صبح میشه هر سه نفر از خواب بیدار میشن نجار گفت این دختر برای منه خیات گفت خیر آقا این دختر مال منه ما شما برای خودتون حرف میزنین این دختر مال منه هر سه نفر برای این دختر دعوا کردم حالا ای کنیز بگو ببینم حق با کدومه کنیز گفت حق با نجاره پادشاه یک سیلی محکم به گوش اون میزنه که صدای داد فریاد کنیز بلند میشه بیبی از خواب بلند میشه و میگه حق با ملاس پادشاه گفت حالا یک مرتبه من از تو بردم بیبی بی قبول میکنه و گفت بله باز هم بیبی بی میره و تو رخت خوابش که بخوابه دوباره پادشاه میگه ای کنیز شب بلنده و قلندر بیکار بیا یک قلیان به دستم بده تا یک داستان دیگه برات بگم کنیز خواه بلند میشه و یک قلیان به دست پادشاه میده ای کنیز بدون که سه نفر همیشه با هم کار میکردن و کارشون لمر بوده لمر ریزی میکردن بعضی لمر می و هر کس پول یا چیزی گم کرده بود اون سه نفر لمر می و اون مال رو پیدا می کردن. همین همینجور کار می کردن. پول زیادی هم به دستشون میامد. این پول رو همراه خودشون می بردن. روزی با یه از یک باقی می رفتن. خلاصه وارد باغ میشن ولی چون خیلی خسته بودن پای درخت اونجا می استراحت می که خستگیشون در بیره. ولی از شدت خستگی خوابشون میگیره پولی که داشتن رو در یک انبانی میریزند و در انبان رو با ریسبان میبندن و از درخت آویزونش میکنن. اما صاحب باغ رو بگم اسمش بوده کار کاررمزان کار برای گشتن باغ اومد دید سه نفر پای درخت خوابیدن اما یک انبان از درخت آویزونه پیش میاد و میگه خوبه که من این انبان رو با پولاش ببرم. انبان با پولاش بر میدارم میره به طرف خونه خودش. بعد از چند ساعتی سه نفر از خوابی میشن. نگاه میکنن. آه انبان پولی نیست. هر سه نفرشون میگن بیایید که یک لمر برای خودمون بریزیم. ببینیم کی پولو برداشته. لمریزی که کردن یکی از اونا گفت پولی که در انبان است، بند همان رسمان است از درخت آویزان است دیگری گفت پولی که در انبان است بند همان رسمان است از درخت آویزان است کار محله خیاطان است نفر سوم میگه پولی که در انبان است بند همان رسمان است، از درخت آویزان است و کار محله خیاطان است یعنی کار کاررمزان است هر سه نفر راه افتادن رفتن و دور خونه کار رمزان رو میگیرن که تو پول ما رو بردی بیا پول ما رو بده کار رمضان داد و فریاد میکنه که شما میخوایید ناحق پول من رو بگیرید با صدای داد و فریاد این مرد تمام شهر جمع میشن و کت خدام میاد کت خدام میگه کار رمضان چه خبره که اینقدر داد و فریاد میکنی کار رمزان میگه این سه نفر ناحق یقیه من گرفتن که تو پول ما رو بردی اون سه نفر گفتن ما ناحق نمیگیم ما لمر میریزیم و معلوم میکنیم که خدا گفت هیچی نگین کارا آسون میشه ما ستا دونه میوه رو توی صندوق میگذاریم اگر شما اون ستا دونه میوه رو اسم بردید که درست میگویید که پول رو کار رمزان برده کت خدا اومد به پنهانی اون سه نفر یک دونه نارنج و دو تا لیمون رو تو صندوق گذاشت و تو میدون آورد همه مردم جمع شدن. یکی از اون سه نفر گفت گردل و گردل همچون گو. یعنی گرده و گرده و مثل یه توپ میمونه. نفر دوم میگه هم نارنجه هم لیمو. نفر سوم میگه یه نارنجه دو تا لیمون. سر صندوق باز میکنن تا ببینن درسته. کد خدا به کار رمضان میگه سری بدون عذر برو پول مردم رو بیار و بهشون بده کار رمضان خانه ها پول رو میده و عذر میخواد خب حالا ای کنیز بگو ببینم حق با کدامه و کدام یک پول رو پیدا کرده کنیز گفت حق با اون یکی که گفت گرده و گرده همچون توپه پادشا باز هم یک دونه سیلی میزنه تو گوشه کنیز و اون داد و فریاد کنیز بلند میشه یک مرتبه بیبی بی از خواب بلند میشه میگه که کنیز منو نزن حق با اون یکی که گفت یک نارنج و دو لیمو پادشا میگه این دو مرتبه که تونو به زبون آوردم قبول داری یا نه بیبی میگه بله باز هم بیبی میره و در بستر میخوابه خلاص پادشاه یک قصه دیگه برای کنیز میگه و کنیز نمیتونه جواب بده و بیبی جواب میده پادشا میگه این سه مرتبه که از تو بردم حالا حق من هست که با من ازدواج کنی اگه خدا بخواد فردا یک جشن عروسی راه میاندازیم دختر که بیبی بی نام داشت قبول میکنه که با او ازدواج کنه فردای اون روز عروسی راه میندازن و ازدواج میکنه دختر همه مجسمه ها رو به صورت انسان میکنه چون که سهر بلند بود فرخشاه و فرهادشاه همدیگر رو میبینن دست صورت همدیگر رو میبوسن، اما همه شاهان که سنگ شده بودند دور فرخشاه جمع میشن فرخشاه با همسر و برادر و کنیز خودش و پادشاه های دیگه به همون شهر که پادشاه بود برگشتن خود فرخشاه بر تخت سلطنت میشینه و برادر خودش رو وزیر میکنه و به همه توی درگاه خودش یک شغل و یک کاری میده که همه در اونجا به خوبی و خوشی بتونن زندگی کنن. این هم از داستان فروخ و فرهاد. امیدوارم که لذت برده باشید. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی